دلی دلیک غیبنمای است و جام جم دارد سخاطمی که دمی گم شود چه غم دارد به خط و خال گدایان مده خزینه دل به دست شاه وشیده که محترم دارد نه هر درخت تحمل کند جفای خزان قلام همت سروم که این قدم دارد رسید موسم آن که از ترب چو نرگس مست نهد به پای قده هر کشش درم دارد زر از بهای می اکنون چو گل دریغ مدار که عقل کل به صدت ای متهم دارد ز سر غیب کساگاه نیست قصه مخان کدام محرم دل ره در این حرم دارد دلم که لافت تجرد زدی کنون صد شغل به بوی زلف و با باد سوبدم دارد مراد دل ز که پرسم که نیست دلداری که جلوه نظر و شیوه کرم دارد ز جیب خرقه حافظ چه طرف بتوان بست که ما سمد طلبی دیم او سنم دارد